والحمد لله رب العالمين والصلاه الله على سيدنا رسولنا و على الطيبين الطاهرين المعصومين و على اشرف الاخلاق اللهم عافينا جميعا المشاهدين الحمد لله رب العالمين يا از روایات حلق الهیه که در مستدرک هم بگم فرمونده نه خونده بودیمون دارو بخیلی بخوند روایت آخری که خوندیم از کتاب مستدرک از یعفریات ایشان نعم کرده یعفریات ده همون سند که ان امیر المومین و ان رسول الله خیلی در سابقیم درکت به این که هر داشتن که هایا واقعا محسوب است به خود پیغمبر یا از کلمات خود امیر المومنی <سؤال> صلوات الله و علیقات قدر رسول اصنابش رسول الله حلق و لحیت و من نحسل فعليه لحمت الله احساو که روایت بین سراحت در باب حلق که باشه فعلا نبید محسن بین روایت الان سراحت که شده باشه حلق اللحی سابقا کردم که در روایت زن هست که حلق شعر شهر رأس ها ها. اون داری کلمه مسلح حاله بحث لغا خودش از مثله مثله یعنی به یک چیزی که بیسته سرکا بیسته و هستون اگر روی زمین بود یا قوام نداشت قوام پیدا کنه بیسته که این تمثیل هم من مثال مثالم احتمالاً همه مجسمه مثالی باشه از همینه و در لغت عرم وقتی کسی میاد در مقابل کسی میستاد مثاله بین یه دیگه قاهیم در مقابلش استاد مثاله اصطلاحاً عبارت از این است خبه لفظه مثاله اون وقت چون اجزال بدن انسان خوب در زمن مجموع هم مثل روشه انسان روشه انسان، دست انسان، جگر انسان در زمن مجموع اگر کاری بخواد که این رو جدا بکنه اعزاب تنهایی خودشون جدا بیستن نه بیستنی شدن بیستن. یعنی خودشون فی نفسه به عنوان تنهایی پیدا بکنن خودشون به نفسه مستعل باشن دیگه جز نباشن به این رنگ تمثیل سلام تمثیل لا تواصلو بالاکلل عبود سر تمثیل اینه یعنی انسان کاری بکنه هر عضو با آدم آدم شی چیزی بشه چیزی بشه انگوش شروعوره انگوش به تنهایی بشه یه بشه یه تنصیل این حالا نقطه پنی رو با عرضو کنم من همیشه عرض کردم در روایات در آیات مبارکه اون رابطه ها رو هم دقت تحت میکنیم اون که اصلا همین من عرض کردم که بعدش داره لعن الله رو برخم و هم لعن رسول الله. این با تو شتاب بشه که آیا رسول الله لعن رسول الله لعن رسول الله یا لعن خدا هست. لحن خدایی یک ذابطه داره یه صاحب داره لحن رسول ها ذابطه بگی این که میگه من مثله فرسه این نکته زن اگر نویه ترشه ببرده کتاه بکنه این گفته مثله حلق و شعر رو نهره سر از خامه مصرد مرد همه یک چیز کتاه بکنه حلق بکنه این هم مسلس. اون معیاره در مصره بودن چیه از اون معیار چیه الان معیاری که ما هستیم در این از که هر عضوی خودش از حالت عضوی و جزی جدا بشه مستقل بشه بگیم گم مستقل این عضو خودش که تنهایی تنهای خودش اونها نیده که اما اگه در ذهن کل باشه در ذهن بدن باشه اون رو مثال نمیده این احتمالا به اصطلاح معروف زیدون اصلون یک نوع مبالغه باشه یک نوع قصد تحکیل باشه یعنی به عوازم اخرانیست اگر این جور باشه پس واسه این فرضی بشه یعنی پیش برای بردی مثال پیش فرض نمیخواه مثل انگوش این واضح همی گفت جزو بدن من هم انگوش دو تنها باشه از بدن جدا شده مثاله این دیگه پیش فرض نمیخوا. تمام موی سر انسان یا موی سدیر انسان میگه اگر موی سدیر ایتو کتار کردی یا بریدی این مسترد. این یک فشاری میاد اون فشاری نه که این موفشو عضه باشه تا این تا عض نشه مسخلی درش به کاربرده نمیشه این, میگه این که میگه فلان چیز مصلطون یک فشار داره که اصطلاحا بهش اعتبار هم اعتبار ببین ببینید شما اگر ناخنتون مثلا کرده خب ناخنتون جدا میشه چرا تا این ناخون, ناخون با ناخون چی چندین گمصلت سر که اون زائد ناخن رو یک حساب نمی کنه انگشت رو یک عضو حساب میکنه قلب رو یک عضو حساب قلب در میاد کبدش جدا میکنه از اون مجموعه این گم مسئله مسئله به باشه در حقیقت این جوجه مثلا موی سر رو کوتاه کرد این چه میشه در اون نکته وقتی میشه که اون عضو حساب بکنه اما وقتی شما موی زیادی ری می کنی کوتاه کتا میکنی مویه و رو دوستانو زباله می ریدی این یکیش مستله بکار نمی چرا مستله بکار؟ شما عوض حساب نکن مستله یعنی عوض رو شما که جزره خودش بشه به تنهایی پس باید فرضی باشه که اون عوض باشه و این رسف شده سرست مثلا مثلا دزر چون این هرس از شعر و اهل و جماله. یعنی میخواد تأکید بکنه نسبت به زن در این حال یک نوع تأکیده که موی زن به منظری دستشه به منظری عضو برده میشه پس اگر آمد حلق و و مستثل این باید این فرض باید اونجا هم بیاد این فرض در اونجا هم بیاد که موی ریش هم به منظری یک عضوه مثل یک انگوشه حالا ما در داریم, داریم که شراعه اهل جماله استنادر بعضی رواتب هست که صدق ضعیف داره که مثلا برای جمال مرغود و چی بودو برای که مثلا یا بعضی از آلوون که استفاده کردن توایید که مو بی موی ریش که خب هر چه توایی بر عوض شده جای شکیش جای قوشانی مدارق اثبات حکم شرعی یا استغوابنی یا وجوبنی و هر مثلا اون یک مثالی بر هر چه شد در اصل اینکه این, این روایت مبارکه باید اینجور معنا بشه و انصافا نسبت به موی در مش از مجموعه شواهد درو اما نسبت به مرد و نگاه نسبت به زنشون یکی عضو اصاسی شه که از اعضاء جمعه این مطلب درسته اما نسبت به مرد بگیم باز با همه روایت اثبات بکنیم یعنی روایت دیگری نیامده باز با خود این روات اصفات بکنیم که شاره بنابر صحت این روایت اون رو یک عضو اصاسی میگه و الان اصفاتش با این خالی از مشکله این یک مطلب به لحاظ مستر ارز مرحوم استاد این روایات رو صحیح می دونستم الا یه روایت مختصری از این چیز که سالوان توضیح دادم ولی اینجا ظاهره اشکال کردن در روایت لیکن بعضها مبناشون در این کتاب جهر فریاد بر سهر این روی مبنائی ایشون مبنائی مبناش رجالی و اما روی مبنائی فهستی تا اونجایی که شواهد ما در خیار ماست اینطوره کتاب جرفری یاد چرا را کردیم؟ احتمال بسیار در همون کتاب سکونی که مصر رفته توسط اسماعی پسر سر امام کازن سا و ارز کردیم کتاب جرفری یاد یک راهش این بود که به بغداد آمد اون نسخه و اون خصوصیات چیز درستی در مصادر قبلی ما وجود نداره از ایش. این در کتاب های مثل صدوق و مثل شیخ توسی و شیخ مفید از اون نسخه چیزی در دست نداری بعدها یکی از اون نسخ توسط سیدخزالله راوندی در مجموعه نام نبادر جمع شد این داره اون هست اون الان موجود بعدها هم از کنم به اسم خود جعب از هند آمد قرن 13 اون هم که شاپ شده اونی که چاپ برمی این برخورده اصحاب ما اصحاب امامیه. البته سلی فضل راوندی رحمه الله از یکی از علمای سنی شافعی گرفته رویانی به اسلام. از او گرفته از شیعه نگرفته فرد نهاییش و شیعه برمیگرده تحریف احمد دیباجی. اما نسخه ای که در اختیار راوندی بوده نسخه ای که از علمای سنی بوده اجازه داده یعنی به عبارت نخواه نست که شیعه و غدال رسیده شیعه بغداد مثل شیخ توصی سید مرتضو سید شیخ مفید نر نکردن شیخ سلیم در قاب نهش همچنین بعدی تاریخه اینا نر نکرد این بعدها دست سنمی ها رفته از دست سونیها ها شد سید فضل لاه راوندی نر کرده راوندی که در حرم حس قطع اون سید می شیخ بره زلکم این فضل الله سیده سید فضل الله راوندی هم ورزش فضل الله می کنه راوندی از ازورگان اصفهان ایشان نر کرده لکن با ترسویه سونیها با هم نصه راوندی جانه افتاد. تا این نصه ای که از هند آمد کنم که مرحوم حاجی نوری نمر کرد. یه که بعد ها جنوبی هم همه تقریبا آقای خوبی دیگران وردشتن از نقل ها نوری. تا اخیران آقای بوجودی هم مستقلن چاپ این وضع کتاب جعفری هم. بهترین کتابی که از این نقل کرده کتاب دائم اسلامی که معاصر شده در نصف هم بوده اگر اون مثله بیرم که ما بفتیم درست باشه که ظاهرا این طور به نظر خودمون که کتاب سکونی باشه کتاب سکونی از زمان امام با ساده ناشته شده بعدها تو قم و قیل مشهور شده و که قدر متعقل از خواب چیز کرده ازشی مقالی زیادش که کردن سلامی سانسور کرده این جعفریاد هم کتاب سکونی که توش سانسور نشده حرص نشده به ذهنه ه با سکونی یکی باشه اگر این مقدمات درست باشه اگر این مقدمات درست باشه احتمال این که جعفریات یه مقدارش از قضای آسان رو مؤمنین باشین هم هستی احتمال هست و این مجموعه این احتمالات هم در اینطور میشه احتمالا کتاب سکونی باشه اما چون اصحاب ما نقل نکردن اون قسمتی کتاب سکونی سه نقل نشده اما چون قدر متحقن از جرطریاته مثل اصطفانه معاصر را نقل نکرده. دعایم اسلام نقل نکردی. این هم که اگر کتاب قبلی باشه اصحاب ما از او نقل نکرد. خودشو در نظر بگیریم دعایم الاسلام نقل نکرد. کتاب قضایی آبستانان و, و احکام در اختیار دعایم الاسلام بوده از اون هم نقل نکرد. چرا شا ما الان نمیدونیم این سر مسئله چیه ما هم الان درست درسته میدونیم لذا پیلن این روایت مبارکه منفردن از این کتابه منفردن محمنی به سطح تطبع اجمالی نه احباستان استقرال تفسیر که در روایت سکونی داشتیم چه روایت سکونی به درکت همه شو ایک یکی نه یکی یاد از روایتش پیدیری کردیم اون چی که برای ما روشن شده اینه یکی مقدارش خود امام صادق همونجه که سمیرز و جبری محمد یک بور این یه مقدارش کم ازیاد نیست نساید به خود کفال بیاد یه مقدارش احتمال واقعا روایات امام صادق رسول باشه اینم درست یه مقدارش احتمالا همون قضای و سنان امیر معنوین باشه یه مقدارش هم که من دیدن با مطابق است با که روایتی که آمنه ا لیکن از امیر همیز وردش از انس وردش از عبدالله عمره وردش از ابو خوریه هست همین مردی در مسادر اهل سنت از رسول الله هست از صحابه متعدد یه مقدارش هم مال اون هست یه مقدارش هم که من دیدم کلمه هستو خود صحابه هست من رسول الله میده سه عبدالله عمره این مطلی گفته باش این هم داره. این مجموعه البته اگر یه این مذهب الصنمش و انشاءالله تمام بکنن این تمام کرد. چون توی لبنان بودن ای اشغالی که از اون قلوهان بودنی اشقالی که جنگی سیزوئی لوغام اینجا نوخانه ما را به مرن کرده اون که لوغام سختو میشه ذهنا بیزاری کشیم بدانید حالا حالا اگر این مجموعه کتاب سکونی جماوری بشه و خوب مستریابی بشه این مطالبی که عرض می اونجا کاملا دیگه واضح خواهد شد نزار به نظر ما باید دنبال این باشیم که حلق الیهیت مثلثون این کدوم که از این اخصانیست که ما ذکر کردیم من احتمالی که خود من میدن نه مثلا ما شخص شخص کرده باشه ما نسبت نزادن جهل به اون که هیچی اصلا از کلم چون رایی به سکونی ما صحبت هاشه چون خیلی مفصل صحبت شده جای این اختصاری که من میگم نیست سکونی بین این به اتفاق تضاق رساب شده یعنی یک نفر از سلمی هم رو توصیح نگیرن یک نفر نه اینکه که در درستان که نزیز داری ابود آدم یا حدیث از او هست اما به هم قاضی موسیقی بوده و به اتفاق یعنی نگیم کسی حتی یک نفر بین معلی اتفاق بودن کسایی که متعبیر شدن تعبیر به کذاب درن اصحاب ما هم تعبیر ندارم جبوی ساکت هست نجاشه هم میشه که تباری اون وقت ما توضیح کافی اعز کردیم مفسقه داری من چون نفرمیدیم الان این تو که لاعقل اگر بخواییم خوب تلوات اصحاب و حرفار بزن سه شار در استفرق از تکنی با صبح نفرقی هم توصیقی نشده درسته اونم راویشونه اما نفرقی من اعز عرض کردن ارزش نفرقی فقط ناقل نسخه است ایچه ارزشی نداره یعنی توصیقی هم بشه فوقش این نسخه سریعه یعنی نوفری جز شخصیت های عیمی نیست حالا از یک تضعیف اونمایی داره خود شخصیت عیمی نیست مثلا سکونی میگن ما نداریم اهل سنت نشانه 180 هشتار پروک کردیم عادتا در این زمان باید بزرگان همون یونس ازش شهر کنه ابن عبی عمر نرمه کنه صفوان از اون نرمه ما متاسفانه بزرگان ما از سکونی نقل نکرده چون از زیاد سکونی کنه خصوصاً خیلی موجد می‌خوام از از بزرگان ما منحصراً عبدالله بن مغیره ایشان زیاد نداره. لذا مجموعه روایتی که ما از عبدالله بن مغیره این با سکونی تقریبا یک 4 شد 1/5 خیلی چون عبدالله بن خودش خیغه احتمالا عبدالله بن مغیره گزینشی نعد بزنم با اختیار بزنه. یعنی نو خدی اختیار نکرده. نوفری اگه بخوایم به زمان خودمون بگیم، حکمش حکمانی انتشاراتی ادغام نش. من اشتباه گفتم، انتشار فلان. حکمی نو اینه. هر سلسله به این معنا نه روات، کتابی نه هر چیزی، مثلا یک کتاب انتشار فلان چاپ کرده. شما بو وثاقت انتشار که صحبت می‌کنید. نوفری شأنش روات ما یه شأنش، شأن انتشاراتیه. نسخه ای رو که مرحوم ابلالین حاشم از, از سرکونه رو بیشتر همین نسخه نوفری این نسخه هم با نسخه عبدالله موقعی اختلاف کرده به کم از دیادی که زیاد لذا احترام عبدالله موقعی حقیق و است و جایی از قدر است وجود اصحابه اجماع است و سقطان سقیل تردید نشوشی لایع ازرادی اهلان و فقیهی و رسافتی و برعی خیلی هر جبیشون توسیقات هست نسخه احتمالا مثلا گذینش باشه یعنی روایت خوبش قبول کرده اما نوفری ظاهرا کامل نهاره کرده بدون تصمیم از نوفری هم تا اونجایی که ما الان میگیم شاید یک نفردی هم باشه مهمش ابراهیم هاشون نهاره نهار کرد کس دیگه نهاره نهار میکرد شباید یک نفردی یک باشه زدیر کنه ابراهیم هاشون که قوم میاد این کتاب رو میاره قوم قوم یه دفع قومی ها زیاد از اب اگر شنیده شده برواز سکونی عمل شده یا برات نوفلی این بعد از ابراهیم و حاشمه من همیشه ارز کردم آه این که مثلا بگم بله از خواب عمل کردم ما از احل تعبد نیستم خودم دنبال مسائل تعبد و شواهد تاریخی این ارز کردم ببینید من یه باری با که میمونیم سکونی روایاتی که از امام سارق داره این مطور رو غیر سکونی قالبا خیلی نادر غیر سکونی. مثلا زراره نهر نکرده محمد نوسیل نکرده بزرگار ما نهر نکرده انفراد سکونی از سکونی معزمشم مو... انفراد نوفلیه البته عبدالله مغیرم دارد دو تا نوسه هست نوسه با فایصل زیاد از نوفلی هم انفراد راینا هاشم این دو سه طبقه ایران هاشه که قومی زیاد از ایران هاشه نامترین این تاریخ داره این طور نیست مبهم باشه ما به مبهم این آن غالبا چیش هادنی من توی عطاق <تصفيق> سربسته تاریخ دوکرد بیا با ما بیم چشم رو دباسه و عطاق دوشت می خودش خودشوار این تاریخ داره این که مبهم باشه چشم مبهم قبول بکنیم این تاریخ چینه ابراهیم راجبی اومده محمد بن احمد ازش تعریف کردن سعد بن عبدالله ازش تعریف می‌کنه صفار ازش تعریف می‌کنه علی بن ابی بکر اینقدر الا ما شاء الله یلاتی تو قم مشهور میشه بلکه تعجب شاید بکنید سقطی با اینکه اهل کوفه است خود نسخه ای چون که کوفه مشهور نمیشه حتی های بعدی ما مثل نجاشی در شهرس یا شیخ طوسی در فارس در خود روایت حتی بهدادی ها از این نسخه قومی درمی کنن که ارانه هاشو مورده <تصفيق> مطلب میتوند تاریخ یعنی کتاب نه در کوفه نشورد میشه نه در بهداد برزه <تصفيق> میان دقیقا از همین نسخه ارانه هاشو که تو درمی کنن حتی نجاشی در فهرست حسه برمیگردن به راه در با. تقدر این تصور این حالات رو بکنیم. تازه با تمامی هرمان باز گذیشی نقل کردن تازه گذیشی چند یک نواح نیست ما الان حدیث تکونی داریم در کتاب فقیه از تو کافی نیست تو کافیه از تو فقیه نیست تو اینا هست تو تحضیح نیست تو تحضیح هست تو, تحضیح نیست. تو تحضیح نیست تو تحضیح داریم از که تو اینا نیست ماست نقلها هم کاملا متضاره و احتمالی که ما دادیم جعفریاد همون کتاب سکونی است لیکن دیگه گذینشی نیست همشه و خوبش ماش به و هر حال اونی من الان با اون حدث و رجال حدث تاریخ حدث شمال فوقا هست احتمال میدن این تعدیر مال که اصحابه باشه نه تا عبدالله مسعودی نه تا خودمی رو مامونی احتمال اونو بیشتر دیگر و در کتاب سکونی در مست رفته لیکن دیگه از ها، چون احتمالاً امال سونیا باشه از شاهدی درش قیده نکردن حتی مثل دائم هم نقل نکرده حتی صاحب دائم این روایت نقل نکرده با اینکه معاصر ایشانه ایشان گرفتیه. دیگه راجبی نقدار بست راجب بریم به روایت بعد یه روایت دیگه هم در هست در هر دهیه شماره 3 مرحوم از این روایت شماره 4 مرحوم تا مستدرک افتخاب جلازدین سیوکی ارده خیلی جامع استغییر اخرج و اصاکر عمل الحسن ابن علی شاید شاید نظر مرمون سال و مستدرک رو این بوده که ایک شون به باید شده به محسن و و بله اگر این همه به جام جامع استغییر استغیر این جامع استغییر هم خیلی خوب سرگیه بکار بود از که نوشتن یکتاری تنی چاست هر از رسول الله به صدیب حروف هجاری نهار کرده به بارد ناظر نداره هم گفت سریح و زهیح و این هم نهار کرده کتاب تا به تقریبا میشه با پرجامش به پاسه همین نهجل که اون آقا نمیشه اسمش نمیخونده یه نهجل پساهی میشه کرده مغزن شمال همین جامعان سقیله همین جامعان سقیله سیوکیست نه من. اون بحج و اون رو نه این نهجل تصاهه در کلمات رسول الله در تقریب حروف خود خودشان میرید تو مقدمه من, من مخونم بگم خودشان تو مقدمه بسید کتابش جا مستقی بود و قشنگم نوشته بخواست که نصور روانی هم ترجمه کرده بله معروف کتاب تابعا شاب شده خیلی ساله خیلی هم جا افتاده نه کتاب جمع جوری جو در یه جل کتاب قطوره اما از هر علیق تا یا کلمات پیغمبر خوب هم ترجم کنم این در حرف این عوضه قال علیه السلام عشر و خسال اعمل حق قوم و لود به ها قهل کو این میرم خوندن یک وقت نخوندن این یک چرگم داشته سابقا ارز کردن و تضییر ها امتون بخلده وقت دهت و صفت رو نم کرده الان قال و قصد و لحیه و طول و شاره. شوارش رو بزرگ میکردن و ریشاش رو می‌تراشیدن و قص الیه ال داره اما احتمال داشت تو کتابی که من حل بود شاید این داستانش که کوتاه کردن ریش و طول، طولانی کردن اشاره من این وقتی تو همین بحث گفتم یه چیزی دوسال بعد میگم ما داریم که یک اعمال جزء اعمال قوم لوطی بعضی وقت ما شی شده چیزی چیز دیگانه دیگه باید اون آخر که دیده از اصحاب شرایع حسابره این بحث دیگه‌ای که جزو همین بحثون خودیه که آیا این حلال به خاطر این کار حرام بوده یا نه این گفتن من در خط مطلب یک مطلب رو به یه قنطوزی باسونشون دست به شد پس یکی دو تا رو بعد دیگر در حلقه لیلی مرغوب حاجی نوری اومردن یکیش لیث نامن حلق بود که تغییر مفصل توضیح داریم و مثلا چیز دیگری این نیست که ایشون آورده یکی حلقا لحیت من مسئله بود این هم روشن نشد انصافا شواهد خارجی داخلیش معیل شید یکی هم این ببایت عمل قوم البته خود ایشون ها این کرده خوب نیست دیگه انسان مطلبی رو میاره درست میاره. خود سیو تی بعد من زنی کن و گفته که این رو باید قابل رو بودیست یا ح این مسئله رو نیدونم این پرانتیز ای ای ای ای ای در سه گفتیم یکی دروست که پرانتیز در سوادیم برگردیم به روایت اخذ من اللحیه و کوتاه کردن من اللحی. در باب شستسه از کتاب و تهاره مرحوم سال و سال آبرا و آدابال همم این باب شستسه حدیث آخرش که پنج بود خوندیم که به مناسبه این وارد بحثن جامعه بزنطی و این بحثه شدیم روایتی یک همون باب رو شروع بکنیم. رویتی یک باب رو مرحوم کُلینی آورده، من یه توضیحی اولاً اخذ کنم که بگم کنیم در باب زیاتجمل که جلد 6 این شافی که ما الان داریم، شاف جدید در اونجا احکام لهیه رو اونجا آورده و روایات حلق لهیه رو نذره کلا. حتی احکام ها هم نذره کلیم. این توضیحه. کُلینی فقط اخذ بن لهیه رو برده. فوتاهر کردن روش اونا رو داره اما رواه حلق و افعال اینها رو نه حدیثی که شون اعاده است من اسادنا ابن احمد نبی علی عبدالله احمد بن عبدالله برقیه که شون چهار 4 تا 5 نفر از برقی من قراران اثر بری میخوام تکرار احتمال دادیم که وقتی یه ادته در برگرده یک نفر از اون ادره اش میذاره مثلا علی محمد بن یکی از اون ادرا یه علیه و محمد هم برقی شاید نظر کلیمی به نسخ باشه وقتی یه ادتا من از خابنان احمد یعنی من در تمام نسخی که از کتاب احمد رو من رسیدی روید خبر شده یک نفر من خبر من اما وقتی اسم یک نفر رو داره شاید میخواد بگه توی این نسخ قد آمده توی برقیه نسخ قد آمده پس این که یه ادتا من از خابنان یعنی در جمعه نسخی که از احمد ندی و این تغییر میکنه انصافا اگر اده همکیشون توصیف نشده باشه داره سهل داره اما اگر نشد کن اده سهل مثلا با جمع بودن شاد بشه وسوخ پیدا کرده اما احمد ابن عبی عبدالله برقی پسر اما عبی اما نظر ابن سوید، ان بعض از خوابه اما خود مرحوم برقی پدر اراق بوده مقداری از های بغداد و کوفه و به قوم این مال بغداد نظر نسوی سقه هست نظر نسوی بعد نیست خود برقی قدر گفتیش کان زعیف هم کل حدیث حدیث یعنی مبانی حدیثیش یعنی یعنی زعفا و مراسیب اینا اینجا انتظار مرسله ان بعض اصحابه ان عبیعیوب خراس از چیشون خزازه خزاز یعنی فروشنده خست هر راز خرزه خرزه مهره مهره ها رو مثلا تو لباس می کسوندن دیدن که لباس مثلا بهش رنگو رنگو بو شدون هم محمده نموسله قال رعیت عبا جعفر علیه السلام وله حجام یخوضو من لحیفه قال در تقال در درها محمد شاهد یخوضو چون ارسردم پیسونیو ارسر ارسرم برن نفره اقف الله ها این بحث که این خود سنیا از تمان صحابه روشن شد که چون پیغم در حرف آیا کوتاه کردن هم جای یا نه این دیشون کوتاه کردن جاید نیست ولیزا در کتاب ترمزی ارز چند بار تا در ارز میکنه کراستو کانیه خود طول نهیتی و عرضه ها این هم همینطوره. این روایت در حجام یک خورم اللحیت محاسن حضرت رو کوتاه کردن این اشاره به این که حق مثلا با مثل عبدالله النومر یعنی که میتونی یک قبضه باشه مثلا محاسن کوتاه بکنن حق با اوناست نه که اعفاق بشه ولی بکنه در میشه رو چه از طرف این چه از مقدم این سند الان گیرش به خاطر بعض اصحابهیه را که من احتمال میدم شاید باو باشه و عدیعیو چون نظر بسرهای به این طولانی تا محمد مسلم نمیرسونه رسونه تب دیمون نه نمی نه البته این هر که مثلا اگه بعض از خوابنا بعض از خوابه شاید نفش این بوده که در کتاب برقی بوده اسم مشرح خونده می شده مثلا حسن ابن سیفه یا حسین ابن سیفه وقت کلیمی اینکراد که بعد از این احتمال هست این که آاندش نقل میکنه نمیتونیم الان روش ارزش علمی بدیم و رواه و صدوق به اسنادی از محولد و مسه بله این خیلی عجیبه مهم اون این سی که مردموم کلی آوردن که خیلی از غریبه یعنی به خاطر اینکه من هم طول داره معم نیست و مرسدم هم وجود داره. که غیر از این جه نسخه خوب همون نسخه یعنی نسبتاً بهتر نسخه مرحوم صدوقه صدوق داره برواح صدوق به اسنادی هم محمد نصدرستم هست توی خود صدوق هم و قال محمد ابن مسلم رئی تو ابا جعفر و ظاهرش به اسنادش از محمد ابن مسلم من کرایر هر کردم در کتابه جرونش هم صدوق به محمد مسلم ضعیفه اون صدرش رو من توضیح دادم هم زعفم و هم تعییدن کتابی که صدوق نقل کرده اصلا اصل مهمترین اصلی که ما از محمد بن موسی حالا الان ما در داری داریم از اون کتابی که خودش نوشته کتابی که که شاگردش علاءالدین نرازی نوشته به علاءالدین نرازی نسبت داده میشه اما آثار محمد بن موسی تفقه علی محمد بن موسی در حد اینطور نوشته تفقه بحث کتابی که علاءالدین داره مصنف فراوانی داره مثلا. کتاب علا علاء ابن رازی یکی از کتاب‌های معروف از خواب بوده اینقدر معروف بوده که الانم تیک شما رسیده دیگه همین که اصول ستات عشر هر چیزی که کتاب علاء یعنی اینقدر مشهور داشته که هنوز هم توی زمان ما یک تیکش رسیده البته از نظر علمی قابل مناقشه است اما به هر حال رسیدید بعد من تذیات کافی از کتاب علاء نسخه بسیار منتشر شده یکیش نسخه برگی پدری که ایجا دست هست. این نسخه مرهم برقی پدر چون چون کوفه بودن حالا هم کوفه است معنوسه کوفه اون نسخه رو قورردن لکن این نسخه برقی خیلی نسخه مشهوری نیست اصحاب غالبا از نسخه دیگه نقل جا اینجا جایی نیست من تا تو هم توضیح بدم طولانی وقت مشکل این نسخه برقی چیه مشکل این نسخه برقی اینه که صدوق از این نسخه در از کتاب عالم صدوق وقتی میگه محمد بن موسیم از این نسخه یه علا نبی میکنه صد و به برقی پدر نبی اونه نبی برقی پسر نمیدونم احمد بن بلا اونه علیه در تا نبی برقی اون از پدرش اون از جدش برقی پسر که اسمش اینجاست احمد نبی افتوله اون از برقی پدر از علا مشکل اون دو تا برجهی که وسط همه استاد صدوب اون پدرش این دونه چینا خوشون رو نیستن این ها جزد اشخال کار کجاست این که میگن نصف صدوب به طریق صدوب به محمد نصف زعیفه استادش که نبیه بر... نبیه نبیه برکباز بود نبیه پسر نبیه نبیه برقی پسر او از پدرش نمو کنه پدرش هم از جدش برقی پسر نمو کنه این دوتا ناشناخت شاید صرف اعتماد صدوق هم کدارا نهرد کردن این امرو ارفیس الان هم هست شاید صدوق نهرد شد میراسای خاندان های علمیه این گوثه از جد در پدر امت الان ما داریم از خانواده های علمی مثلا در مروجیه در شهرهای دیگه میگن آقای نصفه در اینجا هست جد بشینه مثلا احتمالاً سر اعتماد صدوق رو همین الان و ارخی. اما چه عمرو عرفیش دقیق نیست. طبخ خاندان اونم که در اصل اون شرفی که در افسده دو طبقه افسده بودن، افسده منعرفی بودن، اصلا ممکن یکی چیزی ازش جعل کرده زمان علمی نیست این کار، ما میگم علمیه، اما عرفی هست. پس این اشکالش به خاطر جالت استادش و پدر استادش که نبی بغدی پسره. جواب صدوق هم میراث علمیه. پس این روایت اگر راست باشه کتاب علاوگی خیلی ارزش داره. انصافت خیلی ارداشت الان ما هیچ نسخه دیگه الان نداریم فقط ما نحضر به صدوقه ما نسخه دیگه از الان نداریم اینه که این ما این نسخه شناسی رسمون این طریقه فهرستی موردن سیرس وقتی مقابل این رو سخی میکنم نسخه که کلی نفره کسا از الانی از کلیب نزوی از نسخه الانی سکنم نسخهی که صدوق نفره کتاب علا. کتاب بسیار معروفیه لکه خود این نسخه شبه داره ما کتاب علا رو به نسخه فراغان داریم مثلا صفوان داریم نسخه علا صفوان خیلی نسخه خوب صفوانه مثلا متاسفانه الان در خطبی که ما داریم منحسرن توسط صدوخ از کتاب علان نرخ شده و اشکالشم دو تا جهالتی تیزید از طریق ایشان به بردی قسن روید و و سالالله علا محمد مگر والاه فاهي <تصفيق>